این داستان شوهر کدوانو روزگاری مرد بد و ترش رویی بود که فکر میکرد تمام کارها روی دوش اونه با زنش هیچ کاری نمی فصل یونج چینی بود. یه شب مرد دعو کنان و فریاد زنان وارد خونه شد. یه بار دیگه برای زنش چنگ و دندون نشونداد و داد و غار رو انداخت. که دیگه جونش به لبش رسیده بود گفت شوهر عزیزم چرا اینقدر خونه خودت رو کسیف میکنی؟ آقا جان بی از فردا جامون رو با هم عوض کنیم؟ تو ببینیم چی میشه من میرم دنباله یونجه چینی و جمع وری تو هم ببون توی خونه و به کارای خونه برس مرد پیش خودش فکر کرد عجب فکر خوبی جواب داد من از جون و دل حاضرم، صبح اول وقت زنش داس بلندی روی دوشش گذاشت و راه افتاد تا کنار بقیه دروگرها یونجا ها رو بچینه. مرد هم توی خونه موند و به کارای خونه رسید. اول از همه رفت سراغی کرهگیری. اما کمی که کار کرد تشنه نشد. برای همین رفت توی سرداب خونه، تا یه لیوان آب میوه برای خودش بیاره تازه شیر بشکرو باز کرده بود تا لیوانش رو پر کنه که از صدای پای بز فهمید که بز اومده توی آشپزخونه بدون اینکه شیر رو ببنده با سرعت از پله ها بالا دایید تا جلوی بز رو بگیره و نظاره به طرف دستگاه کرهگیری بره اما وقتی به اونجا رسید دید دیگه کار از کار گذشته. بز خودش رو به چرخ زده و اون رو کله پا کرده بود. حالا هم داشت میونه شیر و کره هایی که روی زمین ریخته بود دست و پا می زد. مرد که حسابی عصبانی شده بود پاک بشکه آب میفر و یادش رد. دوی دنبال بوز آقابت بز رو گرفت. اون رو از در بیرون انداخت و لگدی بهش زد. نزدیک بود دل و رودش بریزه بیرون. همون وقت یاد شیر بشکه آب میوه افتاد که هنوز توی دستش بود. اما وقتی دوون دوون خودش رو به زیر زمین رسوند، دید کار از کار گذشته و تمام آب میوه ها روی زمین ریخته. مرد به آشپس برگشت. دید هنوز کمی شیر مونده که کرهش رو بگیره بنابراین دوباره مشغول کار شد چون برای ناهار باید کره درست میکرد وقتی کمی کار کرد ناگهان یادش افتاد خورشید کاملا بالا اومده اما گاو شیردهشون رو هنوز از آغل بیرون نکرده یادش افتاد که گاوش از صبح تا حالا یه ذره علوفه هم نخورده نه حتی یکی که آب بعدی دید خیلی دوره حالشو نداره گاو رو تا اونجا ببره برای همین با خودش فکر کرد بهتره اون رو روی سقف خونه ببره چون سقف خونهشوۨ خاکی بود و علفهای سبز و بلندی اونجا رویده بود خونه بشی به شیوه تپهای چسبیده بود مرد با خودش فکر اگه سر یه تختر رو روی بام و سر دیگهش رو روی تپه بذاره مثل آب خوردن میتونه گاو رو ببره بالای با. اما اون نمیتونست کار کرگیری رو نیمه تمام بذاره. چون بچه یه داشت چهار دست و پا روی زمین بازی میکرد. مرد پیش خودش گفت اگه چرخ کرگیری رو ول کنم؟ بچه خودش رو به اون میزنه و دوباره اون رو میندازه که اینجوری شد که مرد چرخ کرگیری رو هم با خودش برد اما با خودش بکرد بهتره قبل از بردن گاف به روی بام کمی بهش آب بده بنابراین سطلی برداشت تا از چاه آب بکشه اما وقتی میخواست سطل رو بالا بکشه تمام شیرها و کره ها از توی چرخ سرا زیر شد و توی چاه ریخت دیگه نزدیک ناهار بود ولی اون هنوز حتی کره هم آماده نکرده بود به خاطر همین پیش خودش فکر کرد بهتره کمی سیب زمینی قابلمه رو پر از آب کرد و اون رو جلوی اجاق گذاشت وقتی داشت این کار رو میکرد به سرش زد نکنه گاوه از روی بام بیفته و پا یا گردنش بشکنه. بنابراین رفت روی بام تا گاو رو به جایی ببنده. تنابی برداشت و یک سرش رو دور گردن گاو بست. بعد سر دیگه اون رو از دودکش خونه پایین داد. به خونه برگشت و سر تناب رو دور پاش بست. هنوز کلی کار دیگه مونده بود که باید انجام میداد. باید عجله می کرد. چون آب توی قابلمه جوش اومده بود. تازه باید بلوت رو هم آسیاب می کرد. به هر زحمتی که بود بلوت رو اوورد. کنار آسیاب دسته نشست و مشغول کار شد. اما کمی بعد یک هو گاو از لبه بام پایین افتاد. تناب دور مچ پای مرد کش اومد و اون رو با خودش بالا کشید و توی سوراخ دود کش مرد وسط زمین و هوا آویزون موند. حالا خود مرد وسط دودکش گیر افتاده بود. گاو هم از بین بام و زمین آویزون مونده بود. چون نمیتونست بالا بره نه پایین اما از اون طرف بشنوید که زن هرچقدر منتظر موند تا شوهرش بیاد و اون رو برای ناهار صدا بزنه خبری نشد. بعد پیش خودش بکرد هرچی منتظر مونده دیگه بسه. به طرف خونه راه افتاد. اما وقتی به خونه رسید و گاب رو وسط زمین و آسمون آویزون دید فوری و و تناب رو با داستش پاره کرد. با پاره شدن تناب شوهرش هم از وسط دودکش به پایین افتاد. وقتی زن وارد خونه شد دید شوهرش سر و تحت توی دودکش آویزونه و کلش هم توی قابلم یه زمینی فرو رفته سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها طبیعت های زیبا و نایاب